به اسطلاح مرشد میگوید که اونچه چه گفته اند درست نیست البته قبل از او هم باز میگوید که نمیم عجیب و غریبی که مثلا فرض فرمایید که این بچه آروم نمیگرفت رستم او رو گرفت بعد از اینکه رستم او رو در آغوش گرفت و اینا چون آروم نمیگرفت رستم آقاتش تق شد و او رو پرت کرد بیرون پرت کرد روی زمین و بعد تمین خش گرفته و چه شده 6 تا حوادث عجیب غریبی که ارزش گفتن بیش از این هم واقعا نداره. ولی بعد اون وقت خود گوینده میگوید که خب طبیعی است که بچه نمیتونه در آغوش کسی که قاتل او هست سرانجام انجام آرام بگیره و بتوانه در آغوش او بمانه. این قبیل حوادث فرعی و مطالب مختلف، داستان رستم و سهراب رو تشکیل میده به روایت نقالان که ماها برای این کار مقدمات میچینن تا برسد به جلسه کشته شدن سهراب به دست رستم که در عرف داستان سرایان معروف است به سهراب کشی اما یک نکته دیگر رو بنده در ضمن این باید از این کار نقالان و سنت که دارن و عرض برسونم با اینکه شیعه خیلی با نقل گفتن و به خصوص با داستان زدن از حوادث شاهنامه و هماسه ملی موافق نیست و بعضی از علمای شیعه گفته بودند که مخصوصاً اینا رو وضع کردن برای اینکه مردم شرح جنگهای علی بن عبی طالب و ائمه تاهرین رو گوش نکنند اما در عمل واقعا به خلاف این است اولا داستان سرایان هیچ کدام بخش تاریخی شاهنامه رو نه میخوانن نه میدانه نه هرگز اتفاق افتاده که یه نقالی مثلا از سرگذشت اردشیر بابکان یا شاپور یا بهرام گور یا خسرو و عنوشربان سخنی بگه. و اینها رو اصلا نمیدونن و حماسه ملی تا اونجایی که مربوط به این گونه داستان سرایانه به کشته شدن رستم به دست شاغات و برباد رفتن و تباه شدن خاندان پهلوانی ایران تمام میشه که اغلب اونجاها هم نمیرسن یعنی بعد از داستان رستم و اسفندیار و کشه شدن رستم قضیه رو تمام میکنه این یکی دوم این که در چند جا اینها خودشون رو میدونن که گوریز بزنن به صحرای کربلا و در مورد شهیدان کربلا یادی بکنن و در حقیقت روزه بخوانند و اشکی از مردم بگیرن یکی در تمام روزهای جمعه است نقال در هر روز جمعه به اصطلاح برای کسب سواب به یه ترتیبی یه راهی پیدا میکنه و در میون جنگ دو پهلوان جهت یه جایی گوریز میزنه به صحرای کربلا و یکی از شهدار رو سرگذشته یکی از شهده رو میگه و به قول خودش عشق میگیره از مردم. این یک. دوم اینکه در مورد کشته شدن هر یک از این پهلوانان مثل مثلا اسفندیار و دیگران باز موردی هست برای اینکه گریز بزنن به صحرای کربلا و روزه بخوان. و به خصوص، اون چه خیلی بهش توجه دارن این است که وقتی که شرح کشته شدن سهراب به دست رستم رو میگوینن، حتما گریزه به سهرهای کربلا بزنن و حتما مصیبت بخونن و معمولا در این قبیل موارد روزه حضرت علی اکبر، پسر بزرگ حضرت سید شاهده که در کربلا کشته شد بیشتر میخوانن و مرسوم هست که اون روزه رو بخانه. و نکته دیگری که باز از کار این نقالان باید عرض بکنم این است که داستان رو آغاز میکنن یه مقداری میگن در سر یه نقطه حساس او رو متوقف میکنن و یه دوران میزنن به قول خودشون یعنی یه چیزی جمع میکنن البته تکلیفی نیست ولی کسی که آمده اونجا داستان رو گوش میکنه اگر و اگر دلش خواست به اون تناسبی که تحت تاثیر سخن مرشد قرار گرفته یه چیزی به او کمک میکنه و اگر مرشد این دورانی که زد به قول خودش دید به اندازه کافی براش چیز ندادن چنوندگان کمک به او نکردن بعد به قول خودش چندتا تا هم میخواد یعنی باز طلب میکنه که یکی یه جوانمردی بیاد و یه چیزی بده به هر حال طلب میکنه میگیره بعد از اینکه این دوران زدن تمام شد یه بخش دیگری از داستان رو شروع میکنه که معروف است به پس داستان یعنی اون قسمت اول رو میگن پیش داستان بعد دوران میزنه بعد پس داستانه که پس داستان رو پس از دوران زدن نقال یه مدتی سخن میگه و باز در سر جای بسیار بسیار حساسی رشته سخن رو قد یکی از نقالان معروف عبدالنبی فخر زمانی گفته است که اگر نقال سخن رو قطع کرد در جای بسیار جالب توجه دیگه نباید تکرار کنه و ادامه بده و اگر اصرار بکنن دوباره نباید بر سر سخن بره ولی اگر عزیزانی بودن کسانی بودن که نمیشد امرشونو رو اطاعت نکنه و مجبور بود که بره بر سر سخن باز دوباره باید بر یه مقداری بگه ولی او رو در جای حساس تری باز ختم بکنه و اگر ده بار از او خواستن باز باید سعی بکنه جای بسیار حساس داستان رو قطع بکنه تا شنونده مشتاق باشه برای اینکه فردا هم بیاد و در این داستان سرایی شرکت دیگه من عرضی ارزی ندارم در باب این داستان بسیاری از شرقشناسان اولا تقلید زیاد شده یه نویسنده انگلیسی به نام متیو آرنولد یه داستان رستم و سهراب نوشته اصلا که از خیلی قدیم از سالهای 1112 13 این داستان رستم و سهراب که نویسندش ایرلندی البته به فارسی هم ترجمه شده و در فردوسی نامه مهر اگر که حافظه من اشتباه نکنه چاپ شده و گروهی به وضع روانی این دو و به روش رستم در این داستان ایرادها گرفتن سخنان گفتند که اینجا برای بنده فعلا جای بحثش نیست اونچه چه بنده باید در پایان این سخن عرض بکنم این است که فردوسی خودش هم ظاهرا رستم رو به دلیل تجربه بیشتری که داشته و به دلیل سرد و گرم روزگار که بیشتر چشیده، مقصر میدونه و اون بیت معروف رو که در شاهنامه های عادی در آغاز شاهنامه هست، در آخر داستان میاره و اون بیت این است: یکی داستان است پر آب چش دل نازک از رستم آید بخمش قهرمانان شاهنامه در اینجا در یکی از این کتاب تومار سامسوا رو که چند ساعت صفه هست نقل کرده ولی دهها تومار گوشه و کنار پراکنده است که اینا رو باید کسانی که الان در کار جمعوری داستان های عوام،, عوام و فرهنگ اوامان و اینا هستند، اینا رو بکنند بکنن اقل تکثیر بکنن وسیلی دستگاه فتوکپی و امثال اینا که فعلا از بین نره تا فرصتی برای بررسی و احیاناً چاپش پیدا بشه و همینجا هم بنده فوراً بگم که تمام اینها قابل چاپ نیست منطقه باید بهترینش و اونایی که صلاحیت داره برای چاپ شدن چاپ بشه و قبلا هم باید اینها اول جمعآوری بشه و بعد بررسی بشه و این کارا متاسفانه نشونه با تمام این احوال نشانه هایی در دست ما هست که ببینیم که اصیل کدام است و غیر اصیل کدام مثلا بنده ارز کردم که تمام نقال های ایران سالیان سال است. اقل تا اونجایی که عمر بنده اجازه میده یعنی در این 60-70 سالی که بنده زندگی کردم هر جا دیدم هر نقالی در هر شهری بوده اسم پدر تحمینه یعنی اسم شاه سمنگان رو میگه شاه. اینا از کجا یاد گرفتن؟ اینا که با هم ارتباط نداشتن که هر کدوم از این نقالان از استاد خودش یاد گرفته یکی که در شیرازه با اونی که در تبریزه با اونی که در کرمانه با هم ارتباط که نداشتن این نشان این است که از قدیم چنین چیزی وجود داشته و آمد. یا لقبی که عرض کردن برای گیب هست که تمام نقالان او رو گیب علفچهش میگن حالا این روایت از کجا آمده چطور شده در شاهنامه هم نیست ولی خب هست دیگه یک مطلب دیگر یعنی یک روایتی رو در باب مرگ سهراب بنده اینجا باید عرض بکنم که این روایت در شاهنامه نیامده ولی آقای دکتر خالقی مطلق ضمن مطالعاتشون برخوردن به یه روایت ماندایی از این قصه از این روایت که بسیار کهن ساله و بیش از هزار سال از عمرش میگذره هزار و را چند صد سال از عمر این روایت میگذره و این روایت رو ایشون نقل کردن گویا در یکی از شماره‌های مجله ایراننامه بنده الان درست حضور ذهن ندارم و به اون روایت هم کاری ندارم فقط ای که می‌خوام اشاره بکنم این است که چنین روایتی خیلی کهن ساله حالا نظیر اون روایت رو به های مختلف مختصرتر مفصلتر مردم نواحی مختلف ایران این روایتو نقل کردند یعنی نوشتن به خودشون زحمت دادن نوشتن فرستادن برای مرحوم انجوی شیرازی و مرحوم انجوی پونزده تا نسخه پونزده تا روایت پونزده تا انشای مختلف از این روایت خاص رو در کتاب خودش آورده که من بعضیاشو چون به نام و نشان فرستنده روایتم هست بعضیاشو نام و نشانشونو فقط میگم و بعد خود روایت رو فقط یک رو خدمتتون میخوام روایت اول از خانم توران سرکارزاده 21 ساله به روایت از ماهرخ باقریه 75 5 ساله خانه‌دار آبادان روایت دوم از جمال امیدی 37 ساله کارمن بروژرت روایت سوم از محمد رضا خالصیان 23 ساله به روایت از محمد اسماعیل خالصیان 45 ساله زاره نشا روایت چهارم از کریم فخری 22 ساله به روایت از مصطفی وسوقی 31 ساله کشاورز در آذربایجان شرقی. روایت پنجم گداعلی امیدی کیاسری 39 ساله پیشور در رشت. روایت ششم نصرالله قورچی 16 ساله شاگرد دکان به روایت از بیگ مراد قورچی 40 ساله کشاورز در عراق روایت هفتم از کهزاد سردار یوسفی 21 ساله آموزگار اشایری که کیلویه روایت هشتم خسرو قاسمی کارگر اسفهان روایت نهم مایه رضوی استادات رضوی 21 ساله به روایت از پدر خود صد احمد رضوی زاده 46 ساله کارمند در خوی روایت دهم فرنگیس رزمین نجات 18 ساله خانهدار دشتستان و به همین ترتیب دوازدهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و پونزدهم روایت پونزدهم هم از همه مفصلتره و بنده این روایت رو درباره مرگ سهراب میخونم و عرض میکنم که اون روایت مانداییم هم نظیر همین روایت هم و اندک اختلافی و میبینیم که این روایت که تمام مردم نقاط مختلف ایران ازش آگاهی دارن و نوشتن و سندش در دست هست این هزار سالم بیش از هزار سالم سابقه داره حالا این رو من از روی روایت پانزدهم که عرض کنم که روایت آقای محمد رضا خوشدل 25 ساله بافنده کش کشباف در شهر قم و در اردیبهشت 1354 این رو فرستاده برای مرحوم انجاوی بنده میخونه راجع به همین مسئله مرگ سهراب یک روز رستم که از شهری میگذشت تمام مردمان شهر چرک و کثیف هستند شهر هم پر از خاکروبه و کثافت است از مردم آن شهر پرسید چرا شما و شهرتان انقدر چرک و کثیف شدید. گفتند در بیرون شهر اژدههایی است که جلو آب را میگیرد و از ما می‌خواهد که هر روز یک دختر برای او ببریم او دختر را میخورد و کمی جلو آب را باز میکند و ما از بیابی همیشه چرک و ناشوسته و مریض هستیم امروز هم نوبت دختر پادشاه است که برای اج... باید برای اژدها ببرند رستم که این حرفا شنید ناراحت شد نشانی محل ها را پرسید مردم به اون نشان دادند رستم گفت من باید ها را نابود کنم حرکت کرد به محل ها. مردم هم به دنبال او را افتادند به پادشاه خبر دادند که پهلوانی آمده و میخواهد اجدهها را بکشد پادشاه خوشحال شد و به بزرگان و کشور گفت اگر این پهلوان اجده ها را کشت من هم دخترم را به او می دهم پادشاه و بزرگان هم برای تماشا به آن محل رفتند رستم اجده ها را کشت و مردم خوشحال شدند پادشاه دستور داد که پهلوان را پیش من بیاورید رستم را پیش پادشاه بردند پادشاه محبت زیادی به رستم کرد و گفت برای اینکه ما را از این بلا نجات دادی من هم دخترم را به عقد تو در می آورم. رستم قبول کرد و مجلس عروسی برپا کردند بعد از چند مدتی رستم از پادشاه خواهش کرد که او اجازه بدهد که به وطن خود برود پادشاه خواهش رستم را قبول کرد ولی زن رستم از اینکه دوری پدر مادر برایش مشکل بود به رستم گفت من پیش پدر و مادرم میمانم رستم هم یک بازوبندش را به او داد و گفت اگر بچه‌ای که دنیا می آید دختر بود این بازوبند را خرج جهیزیه او کن و اگر پسر بود وقتی که بزرگ شد این بازوبند را به بازوی او ببند و به او بگو دنبال من بگردد تا مرا پیدا کنه. رستم به آنها خدافزی کرد و رفت. اتفاقا بعد از چندی دشمن به آن چهر حمله کرد و پادشاه را کشتند و زن رستم هم بی‌سرپرست ماند و فقیر شد و به شهر دیگری رفت و بعد از چند مدتی زایید، دید پسر است. اما وقتی دید نمیتواند بچه را نگه دارد ناچار شد و بچه‌را در صندوقی گذاشت. و به لب دریا رفت و با چشم گریان بچه را به دریا انداخت. همینطور که صندوق بر روی آب در تلاتون بود، یک وقت مهر مادر و فرزندی به دل او اثر کرد و از خدا خواست که بچه اش را به دو برگرداند. در این موقع آب دریا موجی زد و آهسته آهستان صندوق را به طرف ساحل برگردانید و روی ساحل سرداد و چون آب صندوق را سرداد، زن رستم اسم بچه اش را سر آب گذاشت. که بعد ها به گذشت زمان تبدیل به سهراب شد. سهراب بزرگ شد. مادرش هم برای معاش خود و فرزندش در کارها و مردم کمک می کرد و هیچ قسم هم نمیدانست که آن زن دختر پادشاه هست. سهراب روزها به مکتب می رفی، درس بخواند، برای اینکه زور سهراب از همه بچه ها بیشتر بود. وقتی با بچه ها کشتی می گرفت کسی حریف او نمی شد. و بچه ها او می گفتن تو هزار قدرت هم داشته باشی، حیف که معلوم نیست پدرت کی هست. اگر ما زور نداریم، عوضش پدر که داریم. سهراب از این حرف سخت دلگیر می شود. یک روز سهراب به مادرش گفت باید بگویی پدر من کی بوده و او را به خدا قسم داد که حقیقت را بگوید. مادرش هم تمام سرگودشت خود را برای فرزندش تعریف کرد و بازوبند را به بازوی او بست و به او گفت که اسم پدرت رستم است. سهراب مادرش را بوسید و با او خداحافظی کرد و شهر به شهر می گشت تا پدر خود را پیدا کند. رفت و رفت تا رسید به شهری که رستم در آنجا بود و آن روز تمام پهلوانها با همدیگر کشتی میگرفتند و هر پهلوان به دیگری زور میشد او را میکشت سهراب هم آن روز مصمم شد با آن پهلوانها کشتی بگیرد اتفاقا پهلوانی که میخواست با سهراب کشتی بگیرد رستم بود وقتی سهراب به میدان آمد نگاهش که به رستم افتاد خیلی از او خوشش آمد و به رستم گفت اسم تو چیست رستم از گفتن اسمش خودداری کرد و نگفت من رستم هستم روز ما هم کشتی گرفتن و سهراب رستم را زمین زد اما هرچه میخواست او را بکشد دلش راضی نمیشد و از کشتن او میگذشت تا سه بار دفعه سوم سهراب رستم را زمین زد و باز نکشت دفعه چهارم رستم سهراب را زمین زد و او را کشت سهراب در نفس آخر به رستم گفت من که تو را نشناختم اما اگر پدرم رستم بداند که تو مرا کشده ای را آرد می کند. بعد هم آهی کشید و مرد. رستم که این حرف را شنید حیران شد. وقتی می خواستن نش سهراب را به خاک بسپارند و اون را لخت کردند. رستم بازوبند سهراب را که دید گذشته به خاطرش آمد و فهمید که سهراب پسرش بوده است. نگذاشت اون را دفن می کند. سر نعش او و خاک به سر خود میریخت و می میکرد در این موقع درویشی از آنجا گذشت و از بیتابی رستم دلش سوخت و از ماجرا خبردار شد به رستم گفت اگر چهل شبان روز نعش پسرت را به دوش بگیری و بی این که او را زمین بگذاری دور شهر بگردی پسرت زنده میشود رستم نعش سهراب را به دوش گرفت و شروع کرد به دور شهر گردیدن از همان روز اول شیطان به صورت پیرمردی سر راه رستم کنار جوی آب نشست و پوست سیاه گوسفندی را برداشت بنا کرد به شستن هر روز رستم او را می دید تا روز سیونه از پیرمرد پرسید این پوست چیز که هر روز او را می شیطان شیطانم که منتظر همین سوال بود گفت من می خواهم این پوست سیاه را بشویم تا سفید شود رستم گفت مگر دیوانه پوست سیاه چطور سفید می شود؟ شیطان هم به رستم گفت تو دیوانه هستی که به این نعش را به دوش گرفته ای و میگردانی رستم گفت من میخواهم او زنده شود پیرمرد گفت اگر این پوست سیاه سفید نمیشود چطور مرده دوباره زنده میشود رستم فریب او را خورد و چون از راه رفتن سی و نه شبان روز خسته شده بود نعش سهراب را زمین گذاشت و سهراب چشمش را باز کرد و آهی کشید و جان داد رستم یک مرتبه دید از پیرمرد و پوست سیاه اثری نیست و فهمید که آن پیرمرد شیطان بوده و او را گول زده است حالا این به صورت های مختلف آمده پیرزنی بوده گلی رو داشته می شسته یا اون قسمت بخش اینکه که بچه رو برد انداخت تو آب و امثال اینا گاهی در بعضی روایت ها نیست روایت ها صورت های مختلف داره ولی اصل مطلب همینه و عرض کردم این روایت در حدود ده پونزده قرن از عمرش میگذره و بسیار بسیار ساله و احتمال این هست یعنی شاید احتمال نزدیک به یقین هست که وقتی هم فردوسی داستانهای رستم و سهراب و جمع میکرده به این داستان هم رسیده ولی به نظرش آمده که قصه نوشدارو و نوشدارو خواستن از س... م... کاووس معقولتره و به هر حال اون روایت رو انتخاب کرده و چون اون روایت رو انتخاب کرده دیگه براش امکان نداشته که از این یکی روایت هم استفاده بود اما این روایت در سراسر ایران در نقاط مختلف حتی در بین اقوام غیر ایرانی ماندایی ها غیر ایرانی است. این دهان به دهان گشته در بین ارامنه همینطور در نقاط مختلف خارج از مملکت همینطور عرض کردم که در دوره رسول اکرم داستان رستم و اسفندیار رو برده بودند به جزیرت العرب در روزگاری که هنوز پیغمبر اکرم هجرت نفرموده بودند و نزد ابن به وسیله نقل اون داستان مزاحم حضرت رسول اکرم میشد این است که این داستان ها شهرت بسیار پیدا کرده است از همون روزگاران و این روایات هم وجود داشته اما بعد نکته دیگری که عرض کردم این است که داستان رستم و سهراب در میان این داستان ها از همه معروف تره در میان داستان های شاهنامه فردوسی از همه معروف تره. و بسیار کسان هستند که فقط برای موقعی که نقالان داستان میرسن به داستان رستم و سهراب و او رو بازگو میکنن میان و هر شب در قهر حضور پیدا میکنن و داستان های خیلی حیرت انگیز و جالب توجه از این جلسات سهرابکشی اینا نقل شده است هم در تذکره های قدیمی از دوره صفبی به بعد و هم در روزگاران متأخر آقای دوستخواه در همین روایت داستان رستم و سهراب از قول استاد شادروان بنده مرحوم جلال الدین و همایی یک جمله‌ای رو نقل کردند درباره مردی به نام حاج مرشد عباس اصفهانی این حاج مرشد عباس اصفهانی غیر از مرشد عباس ذریری است قبل از او بود است و مرحوم و همایی یک روزی هم برای بنده نقل فرمودند که روزی همین حاج مرشد عباس رو آورده بودند به محضر مرحوم فروقی که در اون روزگار نخواست وزیر بود و مرد بسیار جاسنگینی بود که برای برای مرحوم فروغی نقل بگه و مرشد عباس نقل گفت و فرمودن که مدت دو ساعت فروغی همینطور گریه میکرد وقتی که مرشد عباس نقل میکفت و بعد این جمله رو از یکی از سخنرانی های استاد نقل کردن البته داستان سهرابکشی نقال ها را در قهوهانه قدیمی شنیده واقعاً واقعا قیامتی برپا می شد که دیدنی و تماشایی بود ای کاش مرحوم حاج مرشد عباس اسفحانی و نقالی او را در قهوهخانه ناظر نازر و خسرو آقای دیده بودید که از چند هزار شنونده پیر و جوان به قبل خودش در روز سهرابکشی یک من عشق و یک دامن زر می گرفت این قول استاد است که ظاهرا خودشونم در این جلسه حضور پیدا کرده بودند. بنده گوینده دیگری رو سراغ دارم که متأسفانه خودم توفیق پیدا نکردم او رو ببینم با اینکه در دوران حیات من زنده بود و در سال 1327 شمسی از دنیا رفت مردی بود به نام مرشد غلام حسین که چون بسیار درشت هیکل و قوی بود و اندام بزرگی داشت معروف بود به غلام حسین بچه و البته این لقب قولبچه رو پشت سرش میگفتند جلوش میگفتند کربلایی کربلا، کربلای غلام حسین و این شخص نجار بود و بدون اینکه هیچ شکستی در زندگیش پیدا بشه یا بدون هیچ علت خاصی فقط روی شوق به داستان سرایی و روی علاقه به شاهنامه کار نجاریشو بل کرد و آمد پرداخت به نقل شاهنامه در قهوه خانه و در این کار به قدری هنرمند بود که هیچ نظیرش دیده نشده و گفته شده است که در سالهای حدود 1300-1298 قبل از کودتای تای سوم اسفند قبل از روی کار آمدن پهلوی شب در جلسه کشی مرحوم غلام سینگور بچه یک صندلی رو یک تومن می خریدن. یعنی یک کسی حاضر شد یک تومن به کسی بده که او از روی صندلی برخیزه و این بنشینه اونجا و باید توجه بدم خدمتتون که در اون روزگار لیره طلاق قیمتش دو تومان بود بنابراین گذافی این قیمت رو به این ترتیب توجه می اینگونه این گونه روایت هایی که ارز کردم که از قدیم وجود داشته و فردوسی ناچار بوده میونه دو تا سه تا روایت معارض یکش رو انتخاب کنه و در شاهنامه بیاره یکی و دو تا و, پنجتا و ده تا و دهتا نیست و بنده هم نه فرصت دارم که تمام این روایت مختلف رو به عرض برسونم نه اینکه فایدهای دره داره اما بعضی از اینها هست که به دلیل اهمیت بسیار زیاد اه یه اشاره مجبورم به اونا بکنم یکی از این موارد داستان اسب سهرابه میدونیم که تمام پهلوانان حماسی در تمام حاسسه های دنیا اسب مخصوص دارند و با این اسب روابط خاص دارند و در بسیاری موارد اسب موجب کمک به اونها میشه و گاهی اونها را از مرگ حتمی نجات میده. از این گذشته چون پهلوان هماسه در حقیقت یه بشر استثنایی است، قایده. از این گذشته چون پهلوان هماسه در حقیقت یه بشر استثنایی است قاعدتاً باید مرکب او هم استثنایی باشه و در اغلب حماسه ها این مطلب رعایت شده و گفته شده در مورد خود رستم هم همینطوره رستم وقتی که به عرصه میرسه و میخواد زندگی پهلوانی خودش آغاز بکنه دنبال مرکب مناسبی میگشته که بتوان یال و کوپال او رو بکشه و بسیاری اسب ها میبینه نمیپسنده یا بعضی از اونها رو وقتی میخواد سوار بشه اسب ها تا به او رو نمیارن کمرشون میشکنه به هر حال تا میرسد یه جایی و میبیند که کره هست که خیلی خیلی زیباست و بسیار قویه و در حقیقت همون اسبی است که شایستگی سواری رستم رو داره وقتی که از گلبان میپرسد که این اسب مال کیه و کجاست میگوید که خداوند این را ندانیم کس همان رخش رستم خانیم بس میگوید ما صاحب این نمیشنسیم فقط این رو اسمش رو برخش رستم میشناسیم اگر تو رستم هستی برو سراغ این کره و او رو بگیر و اگر نیستی صرف نظر بکن برو پی کارت بعد رستم میگوید که خب باهای این اسب حالا اگر من رستم بودم اینو گرفتم قیمت این اسب چقدره و به کی باید بدم جوابش این بوده است قیمت هم نداره قیمتش رهایی ایران و ایرانیان از گرفتاری‌هایی که دشمنان برای اونها ایجاد کردند و به این ترتیب رستم صاحب رخش میشه و رخش با او هست در بسیاری موارد در داستان هفت خان در راه مازندران در حقیقت یکی دو تا از این خانها هست که گذرنده او و پیروز شونده او رخش نخود رستم یکیش شیری هست که میگوید که رخش با اون نبرد میکنه و شیر رو میکشه تازه رستم بیدار میشه یکی دیگر داستان اجده هاست که رستم اون رو تهدید کرده بوده که هرگز دیگه جنگ نکنیم بدون اطلاع من و این اژدها ظاهر میشده وقتی رستم بیدار میشده یعنی رخش سر ها میکرد رستم بیدار شد وقتی بیدار میشد اجده پنهان میشده یکی دو بار اینطور اتفاق میفته و رخش جرئت نمی کرده که خودش بره با اژدها روبرو بشه جرعتم دیگه نمی کرده رستم صدا کنه تا بار سوم خداوند چنان میخواد که اجده ها نمیتونه از نظر رستم پنهان بشه و او رو میبینه و میفهمه که سر صدا رخش بی مورد نبوده و میاد و چاره اجده ها رو میکنه این رخش همینجور یار و همراه رستم بوده تا در سحنهی که منجر به مرگ رستم میشه در اونجا هم رخش و رستم هر دو با هم کشته میشن و برای دفن رخش هم آداب و ترتیبی نظیر آداب و ترتیبی که برای رستم قائل بودن قائل میشه بند جزیات این رو اینجا نمیتونم عرض کنم مورد بحثمونم نیست این است که فقط اشاره کردم برای اینکه دانسته بشه که هر پهلوانی، هر پهلوان هماسی، یه مرکب خاصم داره. خب در مورد سهراب چی؟ جواب این است که ظاهرا در داستانی که فردوسی سروده، در اون قسمتی که فردوسی گفتگو کرده، هیچ سخنی از مرکب سهراب در میون نیست که او مرکبی داشته یا این مرکب رو چهجور انتخاب کرده یا نجات و نسل این مرکب از کجاست و سایر مطالب اما در خود داستان اصیل رستم و سهرابی که فردوسی سروده اونجا گفته شده است که رستم آمد نزدیک سمنگان و بیابان رو پر از گور دید و چند تا گوری زد و آتشی درست کرد و یه گوری رو به درخ زد و کباب کرد و خورد و بعدم خوابید و رخش چمان و چران رخش در مرگ زار بعد فردوسی می که چند تنی از سواران ترکان از اونجا گذشتند سواران ترکان تنی هفت هشت بدان دشت نخچیر برگذشت پی رخش دیدند در مرزار بگشتند گرد لب جوی بار و بالاخره رخشو میگیرند بیتی که در اون گرفتن رخش شهر داده میشه این است فردوسی این فرمید که گرفتند و بردند پویان به شهر چند تا سوار بود تنی هفت هشت به قول فردوسی گرفتند و بردند پویان به شهر همی هر کس از رخش جستند به خب از رخش چه بهری میتوانند جست چه استفاده می میتوانند کرد این مطلب در داستان رستم و سهراب فردوسی مطلقا ازش بحثی نشده و همینجا تمام میشه اما در بعضی بخشهای الحاقی به داستان رستم و سهراب وقتی که داستان مرکب گزیدن سهراب مطرح میشه اون وقت گفته شده است که بله بسیاری از مرکبها تا به تحمل او رو نداشتند و سرانجام یک کسی آمد و گفت که من اصبی دارم که نژادش از رخشه و او رو در اختیار سهراب بود این قطعه الهاقی است در شاهنامه چاپ آقای دکتر خالقی مطلق نیامده در شاهنامه چاپ موسکو هم جز بیتهای الهاقی داستان سهراب آمده است من یه چن رو میخونم اینکه گزارش این گزینش مرکب به نظر دوستان برسه میفرماید که به مادر چنین گفت سهراب گو که ای مادر از من حدیثی شنو یکی است باید مرا گام زن سم پولاد خارا شکن چو پیلان به زور و چو مرغان به پر چو ماهی به بحرو چو آهو به بر که برگیرد این گرز و گو پال من همین پهلوانی و یال من پیاده نشاید شدن جنگ جوی چو با خسم در آرم به روی چو بشنید مادر چونین از پسر به خورشید تابان برآورد سر به چوپان بفرمود تا هرچه بود فصیله بیارد به کردار دود فصیله با اسم گله اسب به چوبان بفرمون تا هرچه بود فسیله بیارد به کردار دود که صحراب اسبی به چنگ آورد که بروی نشیند چو جنگ آورد همه هرچه بودند از اسپان گله که بودی به سهر به کوه و... همه هرچه بودند از اسپان گله که بودی به کوه و به سهر آیله به شهر آوریدند سهراب شیر کمندی گرفت و بیامد دلیر هر اسبی که دیدی قوی زور و یال فکندی به گردنش خم دوال نهادی برو دست را آزمون شکم بر زمین بر نهادی هیون به زورش بسی اسب نیکو شکست نیامدش شایسته اسبی به دست نبود هیچ اسبی سزاوار اوی ببود تنگ دل آن گفه جون. سرانجام گردی از آن انجمن بیامد به نزدیک آن پیلتن که دارم یکی چرمه رخشش نجاد چرمه هم یکی از است که به معنی عصبه که دارم یکی چرمه رخشش نجاد به چو تیر و به جستن چو با یکی کره چون کوه باری ستبر به صحرا به پویه چون مرغی به پر این بیت قافیه هم نداره درست ولی خب همینطور آمده در چاپ اتحاد شورگی. ز زخم سومش گاو و ماهی ستوه به جستن چون برق و به هیکل چون کوه به زور و به رفتن به کردار هور ندیده از کس همچنان تیز بور بور هم به معنی اسب سرخه به گاه دویدن به سان کلاق به دریا درون او به کردار ماک به درون همچو تیر از کمان رسد چون برانی پس بدگمان دنبالش هم همینطوره بیت بسیاری سسته کاملا پیداست که الحاقیه عرض کنم که به سان کلاق دویدن خیلی تعریف زیبایی نیست و در هر حال بیت ها به صورت ملحقات آمده اما چنین داستانی از قدیم وجود داشته و در بسیاری موارد با شاخ و ورکه های بسیار زیاد و با اقراه های فراوان این مطلب یاد شده مثلا در نسخه مرشد عباس زریری داستان رستم و صحراب داستان مفصلی در باب همین مرکب گزینی سهراب هست که اسمم براش گذاشتن سمند کره رخش و اون عنوانم داره در اون داستان گرفتن سهراب سمند کره رخش را اینجا بعد باز بحث میکنه و میگوید که بسیاری از, از پا آمدن و نتوانست صف... گفت بسیاری از از آمدند آمدن و سهراب هرچه دست گذاشت روی کمرشون تمام کمرشون چیکست تا اینکه بالاخره برخوردن به این سمند اما مسئله این است که حالا اجازه بدید از خود خود روایت مرشد عباس زریری بخونم نوشته است که به خصوص تهمینه که ناگاه هر چند نفر در سر این موضوع دلتنگ شده در قلب مناجات می بخصوص به خصوص که ناگاه چشم سهراب افتاد به مادیانی و عقب او کره کوه بیکری که چشم بیننده روزگار ماننده او اسبی ندیده و هیچ گوشی نشنیده از غذا آن مادیان دیوانه مرکب سواری تهمینه بود و کره او سمند کره رخش سهراب هر دو را به تحمیل نشان داد و گفت به نظر من این خوب است اگر مزایقه نکنند بانو اسب را شناخته گفت این مادیان و کره به جهانی ارزش دارند که من بعد آن را برای تو خواهم گفت و این کتاب حال مانده شاید به این جهت است که گفتند حق و حقدار میرسد یاهو سمرش لا اله الا این بیترو را مرشد آنگاه روی به رمه کرد و گفت خیال میکنم ای که همراه این مادیان است تا به سواری این جوان را بیاورد پاسخ داد این کره از همین مادیان است ولی بیش از پانزده سال عمر دارد و کره رخش رستم دستان است که با رمه سمنگانیان به یغما آورده به ما سپردند و تا به حال بیش از ست مرتبه شاه شخصا به من سفارش این کره را نموده و ما به هیچ قیمتی نمیتوانیم آن را به فروش پرسون. گفت بگوید جانور او را دارید پاسخ داد شما خود میدانید که هیچ جانوری از عهده او بر نیاید و تا به حال چندین شیر و ببر و پلنگ و غیره را که در رمه آمدند کشته است. سهراب گفت من اکنون او را امتحان میکنم. و رفت به طرف او. رمبان مانع شده گفت این اس جنگیز تو را میکشد و اگر از تو زیان ببیند ما تو را دستگیر نموده میبریم نزد شاه و اگر رام تو شود ما به تو نمی‌دهیم. ولی به هر حال سهراب به همراهانش میگه که سر رمبان رو گرم بکنن و خودش میاد و اسب رو میگیره کمند به گردنش میاندازه و او رو رام میکنه و سوار میشه و داستان های مفصل دیگری که دیگه حالا اینجا مورد بحث بنده نیست این مسئله مرکب سهرابه که به این ترتیب حل میشه و صحراب هم اسبی شایسته سواری خودش میتونه به چنگ بیاره و سوار بشه اما باز یکی از مطالب بسیار بسیار مهمی که من ده چاره ای ندارم جزیات کردنش این است که این خاندان پهلوانی باید ادامه پیدا بکنه و صحرابی که در سن سیزده چارده سالگی که رستم هنوز باور نمی کرده که این بچه به توان جنگی و لشکری بشه وقتی بیاد و به دست پدر کشته بشه این نسل پهلوانی چگونه ادامه پیدا می برای این کار هم طریقی چاره اندیشیدن و مسئله رو حل کردن ارز کنم که قهرمان هماسه قهرمان فوقلاده است گو که در شاهنامه فردوسی داستان همین است که سهراب می آید از سمنگان و همراه هومان و بارمان روبرو میشه برستان و همونجا کشته میشه ولی در تومارها و شاخ و برگ هایی که برای این کار هست قصه های مفصلی نقل شده است دایر بر اینکه سهراب در طی همین زندگی کوتاهش بارها عاشق میشه و فقط از یکی از اونها بچهی پسری پیدا میکنه این پسر اسمش برزو است و فکر میکنم که همه ایرانیان اسم برزو نوی رستم و پسر سهراب رو شنیدند و کسانی که احیانا در مجالس نقل و اینها رفتند داستانهای بسیار هم درباره برزو میدانند و بنده حالا به طور خلاص عرض میکنم که برزو پهلوان بسیار بسیار است. داستان برزو از خیلی قدیم رواج داشته و اسم برزو در کتاب‌های قدیمی آمده است متنی هست یه منظومه هماسی هست به نام برزونامه نسخه معروفش اون است که در کتابخانه ملی پاریس نگهداری میشه و این رو همون فرانسوی جوان فرانسوی که اول بار اوستا رو کشف کرد و از هند آورد و ترجمه کرد به نام آنکتیل دو این آقای آنکتیل دو بعضی قصه ها و کتاب های دیگر رو هم که در هند پیدا کرده بوده سفارش داده بوده برای اون نوشته بودن و از جمله داستان برزونامه رو داده بوده که همون وقت در قرن هیجده میلادی در هند نوشتن و آورده و نسخهش در کتابخونه ملی پاریس محفوظه عکسی از او هم در کتابخانه ملی تهران هست. نسخه های بسیار متعدد ارزونامه هم در نقاط مختلف دیگر دنیا از جمله در ترکیه و در انگلستان هست و اون نسخه که در پاریس هست از شاهنامه فردوسی بزرگتره. یعنی شاید در حدود هفتاد هزار بیت داره و حالا بنده کار ندارم به اینکه تمام این بیت‌ها اصیله یا جاهلیه یا الحاقی است یا چه هست یا چه نیست اون چه بنده کار دارم این است که بنابر این داستان پهلوانی‌های برزو خودش داستان بسیار دراز متول مفصلی است و انصاف اگر بخوایم باید عرض بکنم که اون نسخه که در کتابخانه ملی پاریس هست نسخه خیلی معتبر اصیلی نیست. برزونامه تا کنون هم چاپ نشده و نسخه خوبی ازش معرفی نشده ولی از قدیم نامآوازه داشته و استاد من آقای دکتر صفاد در تاریخ ادبیات در ایران از این هم در کتاب معروفشون هماس سرایی در ایران که رساله دکتری ایشون بوده در هر دو تای اینا از برزونامه یاد کردن و او رو متعلق دونستند به شاعری به نام عطایی رازی که از قرن پنجم دانستن او رو و وقتی که برزونامه رو نگاه میکنیم می که بسیاری از بیت ها و هم بسیاری از داستان ها تعلق قرن پنجم نداره. ظاهرا وقتی که استاد این رو تهیه میفرمودن همون در مورد در موقع نوشتن رساله دکتریشون، اطلاعات خودشون رو از مقدمه که ژول مول به شاهنامه چاپ خودش به زبان فرانسه نوشته بوده استفاده کردن و قصه عبارت از این است که یکی از شرقشناسان بزرگ فرانسوی به نام جول مول که در قرن 19 میزیسته این تصمیم میگیره که شاهنامه فردوسی رو به فرانسه ترجمه کنه وقتی که میاد این شاهنامه رو ترجمه کنه متوجه میشه که نسخه خوبی از شاهنامه در دست نیست. دلیلش هم این است که مترجم که مثل خواننده عادی نیست. خواننده عادی یه بیت رو نفهمه یا درش مشکل داشته باشه خب رد میکنه میره بیت بعدی. ولی مترجم باید تمام کلمه به کلمه مطالب یک کتاب رو بفهمه و بتونه او رو به زبونی دیگه در بیاره. وقتی که مول نسخه های رایج شاهنامه رو نگاه میکنه вина هیچ خودوم شایستگی اینکه او این رو اصل قرار بده و از روی او ترجمه بکنه نداره در نتیجه مجبور میشه خودش اول متن شاهنامه رو حاضر بکنه و تصحیح بکنه و یه چنین سرنوشتی رو چند تا کتاب ادب فارسی دارن مصنوی مولانا هم همینطوره وقتی مرحوم نیکولسون استاد انگلیسی خواست مصنوی مولانا رو ترجمه بکنه با اینکه چند چاپ از مصنوی شده بود توجه کرد که هیچ کدوم اینا شایستگی برای ترجمه ندارن و مجبور شد اول متن مصنوی رو تصحیح کنه بعد بنشینه و چاپ ترجمه بکنه همچنین است الهی نامه اتار که آقای فعاد روحانی خواستن این رو ترجمه بکنن به زبان فرانسوی ولی بعد دیدن که نسخه های الهی نامه نسخه های خوبی نیست اول یه نسخه تهیه کردن بعد او رو ترجمه کردن در تمام این موارد این مترجمان بعد از اینکه این کارو کردن یعنی ترجمهشونو کردن متوجه شدن که زحمت بسیاری هم برای تهیه و تصحیح متن اصلی کشیدن بنابراین هیچ دلیلی نداره که متن اصلی رو هم که این همه زحمت برای تحصیلش کشیدن ترک بکنن بگذارن کنار اولین کسی که این کار میکنه ژول مول بوده که شاهنامه دو زبانی چاپ میکنه یک طرف سمت راست متن فارسی رو میذاره سمت چپ ترجمه فرانسوی رو و شاهنامه رو در طی 35 سال ترجمه میکنه و چاپ میکنه و این کتاب در قرن 19 در دوره پادشاهی امپراتوری ناپولون سوم در هفت جلد در آمد و چنان که ارز کردم سی سال چاپش طول کشید ولی روزی که از چاپ بیرون آمد به عنوان نفیسترین کتابی که به اصطلاح گرانبهاترین کتاب و بهترین کتاب شده ای که تا اون روز در دنیا منتشر شده بود معرفی شد و شهرت بسیاری ایجاد کرد برای معلف و مترجم شاهنامه منتها در زن مخارج بسیار زیادی هم برده بود این کتاب حروف چینی به وسیله حروف چین فرانسویی که به زحمت بسیار باید حروف فارسی رو به چینه کار بسیار دشواری بود مخارج بسیار زیادی ایجاد کرد که اون چاپخانه در حقیقت ورشکست در نتیجه این چاپ این کتاب ولی به هر حال شاهنامه مول از چاپ بسیار خوب شاهنامه است و اخیرا هم دوباره تجدید چاپ شده با قطع کوچکتر تجدید کردن چاپشو در فرانسه و در دسترسه و ژول مول آمد به عنوان مقدمه مطالب نسبتا مفصلی مقدمه مفصلی نوشت به شاهنامه و در او از سوابق هموس سرایی سابقه شاهنامه و بعد تأثیر شاهنامه در سنت هموس سرایی در ایران پس از ایجاد شاهنامه سخن گفت و یکی از منابع مهم استاد صفا در تدوین کتاب گرانبهای حماسه سراییشون همین شاهنامه چاپ موله قَرَض این است که این برزونامه رو اول بار مول در اونجا در مقدمه شاهنامه خودش معرفی کرده و همین نسخه که در کتابخانه ملی پاریس هست در اختیار داشته و در اونجا این رو نسبت داده به عطای رازی و عطای رازی مال قرن پنجم در نتیجه چنین به نظر آمده که برزونامه از آثار خیلی خیلی قدیمی قرن پنجم است و حال اینکه چنین نیست وقتی که برزونامه رو به خصوص این نسخه رو مطالعه میکنیم میبینیم که ملحقات بسیار داره، گسیختگی های بسیار داره، مطالبی داره که مال های بسیار متأخرتره تره و به هر حال واقعاً برزونامه الان یک کتابی است که جا داره که مجددن مجددا که نیست برای این که هنوز چاپ نشده جای اون هست که تمام نسخه هاشو دقت بکنند و ببینن و بشناسن و بیارن و یه چاپ خوبی ازش ارائه بدن مقدمات این کارو یکی از شرقشناسان که خوشبختانه زنده هم هست آقای فرانسیس ریشار که مسئول نسخه های خطی شرقی در کتابخانه ملی پاریس فراهم کرده و مقاله بسیار با ارزشی در مورد کتابشناسی برزونامه نوشته و تمام هایی که موجوده معرفی کرده و کار رو برای کسی که بخواد این کار در این کار اقدام بکنه آز... کار رو برای کسی که بخواد در تصحیح برزونامه اقدام بکنه آسان کرده اینجا زیر عنوان نامگذاری صحراب میگوید که القصه داستانگویان میگفتند که بعد از رفتن زال و رستم تحمینه پرسید رستم در خارج شهر چه میکند غلامان آنچه گذشته بود معروز داشتند تحمینه متغیر شده اسلحه پوشید و بر اظم کشتن رستم از قفای آنان برفت و از بیراه مرکب میراند تا در سر راه ایشان در میان دربندی کمین کرد تا رستم رسید تیری جهت او رها کرد ولی تیر خطار رفت ولی تیر خطار رفت رستم پرسید این چه بود؟ زال تهمینه را در میان دره ای از آن در بند دید مطلب را به رستم گفت و خود رفت تهمینه را به نصیحت برگردانید تهمینه به شهر آمد و اسمی برای نوزاد او معلوم نشد تا کودک را به دریا افکن و هنگام یافتن چون طفل میان سپر در وسط کف آب و برگ و خرد چوب چرخ زنان به طرف او می آمد پس در حال زوق فریاد میزد، سوی آب من سوی آب من و او را از آب گرفت و بعد آن کودک را سوی آب نام نهاد و رفته رفته سوی آب سهراب شد حالا خود مرحوم زریری این رو نفی میکنه و میگه که این درست نیست میگوید که به زم راقم هر دو موضوع بیمعنی و بیجامی باشد زیرا اولا تهمین قادر به چنان جسارتی نبود و در ثانی چون سهراب از بطن مام به عرصه شهود قدم نهاد تهمین در نبودن رستم نامش را سهراب کرد چنین که فردوسی فرماید چون نه ماه بگذاشت بر دخت شاه یکی پورش آمد چون تابند ماه تو گفت دیگه پیلتن رستم است و اگر سام شیر است و گرد نگرم است چو خندان شد و چهره شاداب کرد